صفحه 1066 پاسخ داد ای پدر ابدن احساس ناراحتی نکنید اگر من در جشن عروسی حاضر نشدم واقعا نمی خواستم زیرا من آشق نور و نهار بودم و اگر شرکت می مردم و حتی خود شما چه می گفتید آشق واقعی نمی تواند مشوق خود را در آغوش دیگری ببیند زیرا نمی از روی عقل و منطق تصمیم بگیرد پس آن بود که در جش حاضر نشوم. اما در مورد تیراندازی به طوری که میدانید دانید من آنقدر دور رفت که نتوانستیم آن را پیدا کنیم و چون پیدا نشد مرا برنده تشخیص ندادید و علی را برنده اعلام کردید. در حالی که این اظهار نظر عادلانه نبود. من خودم بعداً در مسیر مستقیم یعنی در جهتی که تیر خود را رها کرده بودم رفتم و جستجو کردم و در فاصله ی بسیار دور آن را پیدا کردم به جای اینکه از این واقعه ناراحت شوم به این فکر افتادم که مسلحتی در این امر بوده است زیرا هیچ قهرمانی چنین بودتی ندارد که تیری را تا فاصله چند فرسنگی بپراند مانورین از تصمیم شما در مورد عروسی علی با نور و نهار ناراحت نشدم بلکه راضی هم بودم و دنبال سرنوشت خود رفتم و تردید نداشتم تصمیم سلطان به سود من بوده است اینک از زندگی و سرنوشت خودم بسیار خوشنودم در عین خوشبختی که دارم فقط یک چیز همواره مرا ناراحت میساخت. و آن این بود که مبادا شما از نیامدن من در جشن ازدواج برادرم ناراحت شده باشید ماشون در این مدت از وضع حال من میخبر بودید لزاره تشویش و اندوه شده باشید و انگیزه من برای دیدن شما همین بود که بگویم نگران من نباشید و تنها خواهی شیم که از شما دارم آن است که اجازه فرمایید مرتبا به دیدن شما بیایم سلطان هندوستان گفت فرزندم البته می توانی همیشه اینجا بیایی ولی به من بگو کجا زندگی میکنی که اگر دیر به اینجا آمدی و یا حضورت لازم بود دنبال تو بفرستم آرزوی من آن است که در این قصد باشی و همیشه تو را ببینم چهاراعت پاسخ داد معذرت میخوا که نمیتوانم بگویم کجا زندگی می کنم زیرا این قسمتی از راز زندگی من است که سرنوشت بر سر راه من قرار داد و من خود مرتبا به دیدن شما خواهم آمد زیرا وظیفه ی فرزند است که به دیدن پدر خود بیاید سلطان گو فرزندم نمیخواهم به راز تو آگاه شوم ولی با آمدن خودت در نزد من می توانی جبران این غیبت طولانی را بنمایی هیچ لذتی برایم بالاتر از این نیست که با هر بار آمدند محرومیت های گذشته را جبران کنی بدون آنکه به کار و شغل خود لطمی وارد سازی شاهزاده بعد از سه روز اقامت نزد پریبانو بازگشت او انتظار نداشت شاهزاده به این زودی مراجعت کند و از او تشکر کرد و گفت من بی جهل به تو مشغول بودم مرا ببخش او حرف خود را صادقانه بیان می کرد و همسرش را می پرستید. دوستی و یگانگی این زن و شوهر به حد کمار رسیده بود یک ماه از زمان بازگشت شاهزاده از نزد پدرش میگذشت و پریبانو تعجب کرده بود که شاهزاده برخلاف گذشته هیچ صحبتی از پدر خود و یا ابراز تمایل به دیدار او نمیکند. روزی به شاهزاده گفت چرا نمیخواهی به دیدن پدر بروی تو به او گفته ای در فاصله های نزدیک به ملاقات او خواهی رفت وقتون یک ماه هست که تو او را ندیده ای شانستاده گفت همسر عزیزم من پدرم را فراموش نکردم فقط میخواهم رفتارم بگونه ای باشد که تو همیشه از من خوشنود باشی پریبانی پاسخ داد سرور من زیاد هم به فکر من نباش هر کدام از من و پدر جای خود را داریم او هم حق دارد که تو مرتبا به دیدنش بروی من پیشنهاد میخونم ماهی یک بار بدون اینکه به من بگویی به دیدار پدرت برو شاساد احمد مانند دفعه پیش با همون تعداد سواران سوار بر اسب زیبا و با همون شکوه و وقار به کاخ سلطان وارد شد و سلطان دیدن کرد و او را خوشحال کرد ملاقات ماهانه به طور منظم چندین ماه ادامه داشت و هر بار از بار پیش با شکوه تر و با وقار با ملازمان خود به دربار سلطان میرفت نخوس وزیر سلطان کی میدید شاهزاده احمد هر بار با تشریفات و شکوه فراوان و همراهان ملازمان به دیدن سلطان میآید نسبت به او حسادت ورزید و به فکر افتاد که سلطان را نسبت به او بدبین سازد و به سلطان گفت احتیاط حکم می کند که شما بدانید شاهزاده در کجا زندگی می‌کند و چگونه و از چه منبعی امور مالیش را را می می‌سازد که می‌تواند با این شکوه و قدرت و ملازمان هر بار دیدن شما بیاید. در حالی که او هیچ گونه پولی از خزانه نمیگیرد و در درآمدی هم ندارد اما شاهانه زندگی و شاهانه رفتار میکند مانوی شاهزادی اینجا میآید که قدرت خود را رو به رخ سلطان میکشد و بگوید من توانا و مستقل هستم و نیازی به سلطان ندارم و سوی دیگر همه مردم هم او را بسیار دوست دارند و او میتواند با استفاده از پشتیبانی مردم و فریب دادن آنها براحتی تاج تخت شاهی را از شما بگیرد و خود به تخت شاهی تکی زند صوفان هندوستان که در این زمینه فکر نمی کرد، ممکن است روزی فرزند او بخواهد او را از سلطنت برکنار کند به نخص گفت اشتباه می کنی. پسر من شاهزاده احمد مرا دوست دارد و من به وفاداری و علاقه او نسبت به خود اطمینان دارم و دلیلی نمی بینم که به او بدبین شوم. بعد از سخنان سلطان نخوز وزیر اظهار داشت تدبیر سلطان در مورد ازدواج شاهزاده خانم نوران مورد ستایش تمام مردم با اقل و شعور است ولی محروم شدن شاهزاده احمد از ازدواج با نوران و, و کنارگیری او از خاندان سلطنتی دلیل آن نیست که او نقشهای علیه براندازی سلطان در سر نپروراند به نظر می‌رسد که او دارای امکاناتی است که می‌خواهد با خوشنود نشان دادن خود و خام کردن سلطان آن را به موقع اجرا گذارد. به همین دلیل او از امکان و زندگی خود هیچ‌گونه اطلاعاتی در اختیار سلطان نمی‌گذارد. اما من وظیفه دارم را مسلحت شما و مملکت می‌دانم بگویم. خطر بزرگ آن است که شاهزاده در محلی زندگی می کند که تا سلطان فاصله زیادی ندارد. و اگر دقت کرده باشید هر بار که شاستاد احمد اینجا میآید، همراهان او با های نو و زین و تازه هستند و این نشانه آن است که از فاصله بسیار نزدیک میآیند که گرد و غباری بر لباس و رقاب اسب ها دیده نمی شود. به هر حال شما باید برو به شدن با هر پیش آمدی آمدگی داشته باشید وقتی سخران نخص وزیر پایال یافت سلطان گفت من معتقد نیستم که شاهزاده احمد اندیشه بدی درباره من در دل داشته باشد اما از مسلح اندیشی شما برای من و کشور از شما سپاسگزارم. گذارم. گرش سلطان در ظاهر خود را بی تفاوت نشان میداد اما در باتن سخنان تحریک‌آمیز آمیز وزیر اثر خود را بخشیده بود. زیرا فوراً منور محرمان دستور داد همان دادوگر را از در مخفی و بدون آنکه نخست وزیر متوجه گردد به حضور آورند. سلطان به زن جادوگر گفت، با اعتقادی که به سخنانت دارم و دفعه پیش هم از زنده بودن شاهزاده احمد خبر دادی، اینک می خدمت دیگری انجام دهی. من علاقه مندم، از محل سکونت شاهزاده باخبر شوم. چون دفعه قبل از محل زندگی خود چیزی نگفت و نمی خود شاهزاده و یا هیچ خودم از اعضای دربار از این مطلب آگاه شوند. شاهزاده امروز اینجا بود و فردا میخواهد به منزل خود برگردد از تو میخواهم فوراً در این مورد مرا آگاه سازی. من فورا فوراً به طور پنهانی خود را به محل فرود پیکان شاهزاده رسانده و در گوشه یکی از تخت سنگ ها خود را پنهان کرد و در کمین نشست تا شاهزاده از آنجا بگذرد و او را تعقیب کند. صبح روز بعد شاهزاده به اتفاق ملازمان خود کاخ شاهی را ترک گفت و به سوی قصد خود روان گشت. همین که از مقابل مخفیگاه جادوگر عبور کرد، جادوگر با چشم او را دنبال کرد. اما بعد از مدتی به طور ناگهانی شاهزاده و یاران او ناپدید شدند و جادوگر هرچه کوشید محلی را که آنها در آن ناپدید شده بودند، به بشناسد موفق نشد. جادوگر وقتی دید عبور از این کوهای پر پرپیچ‌وخم دشوار است، به این نتیجه رسید که از دو حال خارج نیست: یا شاهزاده و همراهان او به قاری پنهانی وارد شده و یا آنکه به مسکن یکی از پریان رفتهاند. جودیگر تلاش بسیار کرد و اطراف و دامنه کوه را مدت ها گشت تا شاید اثری به دست آورد، اما عاقبت بدون نتیجه به شاه مراجعت کرد. او به حضور سلطان آمد و گزارش داد، محلی را که شاهزاده در آنجا زندگی می کند شناخته، اما خانه او را هنوز نتوانسته پیدا کند. ولی تا چند روز دیگر پی به آدرس دقیق آن خواهد برد. و به عرض سلطان خواهد رسانید. سلطان از اطلاعاتی که توسط جادوگر به دست آورده بود بسیار راضی به نظر می رسید و به جادوگر گفت من منتظر خبرهای تازه خواهم بود و برای دلگرمی بیشتر جادوگر الماس گران قیمتی به او بخشید و گفت چنانچه اطلاعاتی را که می خواهم در اختیارم بگذاری پادش کافی به تو خواهم داد شاهزاده احمد هر ماه به دیدار سلطان میرفت و جادوگر که میدانست چه روزی از ماه را شاهزاده برای دیدن شاه برمیگزیند این بار یکی دو روز جلوتر به همان محلی که شاهزاده و همراهانش ناپدید شده بود رفت و خود را پنهان کرد تا به طور صحیح خانه او را شناسایی کند روز بعد شاهزاده احمد طبق معمول از در آهنی بیرون آمد و با همراهان خود از مقابل جادوگر عبور کرد اما در همین هنگام شاهزاده پیرزنی را دید که دستهای خود را روی دیواره کوه گذاشته و سرش به سوی زمین خم گشته و ناله می کند. شاهزاده دلش برای پیرزن سوخ و جلو رفت و از اسب به زیر آمد پرسید ای بانو چه ناراحتی دارید و از منطقد خدمتی ساخته است پیرزن جادوگر پاسخ داد به سوی شهر میرفتم ناگهان حس کردم تب دارم و نیروی خود را از دست ام. پاهایم یارای راه رفتن نداشتند ناچار در همین کنار به این کوه تکیه کردم تا کسی در اینجا به دادم برسد شاهزاده با مهربانی گفت ای بانوی عزیز نگران نباش. من برای یاری شما آمدم و شما را به خانه خود میبرم تا در آنجا درمان شوید و هر مدت هم که لازم باشد استراحت کنید اکنون یکی از همراهان من به شما کمک خواهد کرد جادوگر که برای همه منظور خدا به بیماری زده بود از خدا خواسته موافقت کرد دو تن از همراهان شاهزاده با هزاران دشواری او را از زمین روی اسب قرار دادند و دنبال شاهزاده به سوی در آهنین قصر پریبانو گراه افتادند سواری که جلوتر بود و در آهنین را گشود و بدون آنکه از اسب پیاده شود سوار دیگری را سراغ پریبانو فرستاد پریبانو با عجله فرابان خود را به در ورودی قصر رساند در این هنگام دو سوار دیگر زیر بغل زن جادوگر را گرفته و در گوشه ایستاده بودند. شاهزاده احمد خطاب به پریبانو گفت: ای شاهزاده خانم، این بانوی پیر احتیاج به کمک دارد. من به او وعده یه کمک ام. هم. در همین ها او را به این حال دیدم که قادر به ادامه راه رفتن نداشت. از تو خواهش دارم او را به درون قصر راهنمایی کنی و درمانش نمایی. با قلب مهربانی که داری مطمئنم درخواستم را رد نمی‌کنی. پریبانو در تمام مدتی که شاهزاده با او سرگرم صحبت بود، به جادوگر یا بیمار دروغی نگاه می‌کرد و چشم از او بر گرفت پس از بیانات شاهزاده، فورانجر تن از خدمتکاران خود را احضار کرد و دستور داد پیرزن را در درون اتاق راحت و آمادهی جای دهند و درمانش را آغاز کنند. در مدتی که دو خدمتکار مشغول اجرای فرمان پریبانو بودند پریبانی به شاهزاد نزدیک شد و آهسته زیر گوش او گفت من احساسات انسانی تو را تحسین می کنم و از انسان نیک نهاد و تربیت یافته ای چون تو غیر از این هم انتظار نمی رود اما باید به تو بگویم که بیماری این زن ساختگی است و برای اجرای نقشه خود را به این قصر آورده او زن نیرنگوزی است که برای تو درد سرهای ایجاد خواهد کرد اما نگران نباش. برای تو دام های گسترده خواهد شد ولی من در هر مورد تو را راهنمایی خواهم کرد و نخواهم گذاشت نقشه بدخواهانه تو اجرا گردد اینک برو از سلطان دیدن کن شاهزاده در پسخ پری بانو گفت این بانوی نیخوکار من در زندگی به آفریدگارم و جز نیکی کاری از من ساخته نیست و اگر هم کسی یا کسانی قصد آزار مرا داشته باشند با هم از کردار و رفتار خوب دست بر نخواهم داشت شاهزاده بعد از این سخنان با اجازه پریبانو خداحافظی کرد و همراه ملازمان خود رستپار قصر سلطان گردید بعد از مددی به قصر رسید و مانند همیشه از سوی سلطان خوشامر شنید و سلطان هم ناراحتی و بگمانی خود را که از جانب نخست وزیر به او القا شده بود از شاهزاده پنهان نگه داشت از سو ندیمه پریبانو جادوگر را در یکی از بهترین و مجهزترین اتاقهای کاخ که همه گونه وسایل آسایش در آن فراهم بود بستری کردند و بالش های راحت و زر در پشت او جای دادند و ملافه ملافه‌ها که پوشیده از های طلا بود روی آن کشیدند زن جادوگر باز هم ناله های ساختگی می‌کرد و می‌گفت تب شدید دارد آنگاه یکی از ندیمه‌ها شتابان بیرون رفت و جامی لبریز از نوشابهی که می گفت آب چشمه شیر هاست و درمان قطعی تب و هر بیماری دیگر است برای او آورد و با کمک ندیمه دیگر سر جادوگر را بالا نگه داشتند تا به طبانت نوشابه طب را بیاشامد همان ندیمه گفت کمتر از یک ساعت دیگر بهبودی کامل خواهید یافت بعد از اون که جادوگر با ناله نوشابه را نوشید سر خود را بر بالش گذاشت. و ندیمه ها هم ملافه و لحاف را روی او کشیدند و گفتند ما گوش به فرمان شما در اختیار شما هستیم فعلا شما قدری استراحت کنید. بعد از بیدار شدن کاملا بهبود یافته و ناراحتی هایتان مرتفع خواهد شد زن جدویگر که نمیخواست بیماری سختگیش زیاد به طول انجامد و فقط برای پی بردن به محل سکونتی شاه ساده این ترک کرده بود از پیروزی خود بسیار خوشحال بود و بی‌صبرانه میخواست نزد سلطان برود و او را از موفقیت خود آگاه سازد پس از مدتی ندیمه ها به اتاق جادوگر آمدند و ملاحظه کردند او از بستر بیرون آمده لباس پوشیده و آماده رفتن است به محض اینکه جادوگر ندیمه ها را دید فریاد کشید و گفت عجب داروی شفابخشی در عمرم دارویی به این مندی نخورده بودم مدتی است در انتظارم شما بیایید و مرا به نزد بانوی خود راهنمایی کنید ازض سپاسگزاری کنم و بگویم تا ععم دارم خدا مدیون او خواهم دانست. این دارو اثر اجاز داشت: میبخشید عجله دارم باید هرچه زودتر بروم. دو ندیم جادوگر را همراه خود بردند و چندین تالار مجلل عبور کردند و به تالار وسیعی رسیدند که از همه تالارها با شوهتر بود. و پریبانو در این تالار بر تخت طلای یک بارچه که با جواهرات بسیار زینت یافته بود نشسته بود و در هر طرف او زیباترین و جوانترین ندیمه ها بالباس های گران قیمت و زیبا ایستاده بودند جادوگر از عظمت و شکوه مجلس و وقار پریبانو زده شد در برابر تخت زرین پریبانو زانو زد و زمین را بوسید و تشکر کرد پریبانو هم به جادوگر گفت خوشحالم این فرصت را پیدا کردم که شما را درمان کنم نمیخواهم شما را در اینجا نگه دارم ولی چنانچه بخواهید گماشتگان من قسمت های مختلف کاخ را به شما نشان خواهند داد جادوگر که شدیدن زیر تأثیر این همه جلال و اشرافیت قرار گرفته بود قادر نبود خود را برای تشکر به حرکت درآورد و با فرود آوردن سر ابراز تشکر کرد و دوباره زمین را به نشانه ادب بوسید. و اجازه مرخصی گرفت. ندیمه ها او را در قسمت های گوناگون قصر و قسمت خزانه گردش دادند و به او گفتند همه این‌ها جزئی از مجموعه ها و جواهرات بی‌نظیر است. ضمناً بانوی ما قسط های بیشمالی دارد که هر کدامشان از دیگری زیباتر است که از حیث عظمت و شکوه مانند ندارد. ندیمه ها رادویار را تا که در آخرین هدایت کردند. و در آنجا جادوگر خداحافظی و تشکر کرد و از قصر خارج شد بعد از اینکه او قدری از قصر دور شد و عقب برگشت و نگاه دقیقی کرد تا درست محل کاخ را به ذهن بسپارد اما عمل جادوگر بیفایده بود زیرا وقتی به پشت سر خود نگاه کرد از سری از در آهنین و کاخ ندید اما او خوشحال بود که مأموریت خود را با پیروزی به انجام رسانده است جادوگر از راه‌های فرعی خدا به در مخفی قصر سلطان رساند و به طور محرمانه ورود خود را به آگاهی او رساند و به حضور سلطان باریافت و نقشای خود را برای ورود به خانه شاهزاده احمد برای سلطان تعریف کرد و داد و تمام مشاهدات خود را دربارۀ قصر شکوه شاهزاده و همسرش برای سلطان بیان کرد و گفت کاخ شاهانه شاهزاده به نظر او در دنیا مشابه ندارد و ثروت و جواهرات موجود در آن کاخ هم بیمانند است. سپس جادوگر اظهار نظر کرد چنان معتقد باشیم شاهزاده احمد جوان نیک نهاد و خیرخواه سلطان باشد از کجا بدانیم که همسر او پریزاد خیالاتی درباره سرنگون کردن سلطان در سر پروراند شاهزاده احمد زیر تاسیر زیبایی و افزون آن پریزاد است او به راحتی تواند سلطان را از تاج و تخت بر سازد. و شاهزاده را برانگیزد تا چنین ای را به موقع اجرا در آورد. سلطان که تخنونی جادوگر کاملا او را نگران ساخته بود، فوراً نخست‌وزیر را به احضار و آنچه را شنیده بود برای او بازگو کرد. و سپس با حضور چند تن از بلم در دربار که مشاورین او بودند، اظهار داشت همسر شاهزاده احمد پریزادی است بسیار با نفوز و ثروتمند و ممکن است شاهزاده را تشویق کند. تا در فکر به دست آوردن تخت سلطنت بیفتد و خواستم نظر آقایان را در این باره بدانم. یکی از مشاورین مخصوص سلطان لب سخن گشود و پیشنهاد کرد: وقتی سلطان دانند چه کسی برای سلطنت خطرناک شناخته شده، باید او را نابود سازند. خصوصاً آن شخص در حال حاضر در دربار هم حضور دارد و در اختیارتان هم میباشد و تا زمانی هم که او را به هلاکت نرسانید. باید وی را در زندان شدیدن زیر نظر بگیرید و از تمام اعمال و افکار او آگاه باشید این پیشنهاد را تمام مشاورین و نخوصفزه مورد تعییز قرار دادند در این هنگام جادوگر که ارکه مشاورین بود با اجازه سلطان اظهار داشت در صورتی که بخواهید شاه ساده را زندانی و زیر نظر قرار دهید باید همراهانش را هم زندانی کنید در صورتی که می دانیم همراهان شاهزاده از جنها هستند و آنها می نامرئی نامرعی باشند و در این صورت نمیتوان آنها را زندانی ساخت و به علاوه آنها دست به کارهایی خواهند زد که برای ما ایجاد دردسر دسر خواهد کرد به نظر من آن است که با نیروی تدبیر بر آنها قلب کنیم من پیشنهاد میکنم چون پریها و جنها کارهایی انجام می دهند که از قدرت آدم خارج است لذا سلطان از ساده بخواهند که او از همسرش درخواست انجام کارهای دشواری را بنماید و چون شاهزاده در برابر چنین هایی از همسر خود دچار محذور اخلاقی خواهد شد و برای آنکه در برابر تقاضاهای سلطان قرار نگیرد، دیگر اینجا نخواهد آمد. برای نمونه، سلطان برای سفرهای خود چادری لازم دارند که تمام همراهان و لشکریان را در خود جای دهد. تا از آفتاب و باران محفوظ باشند و در این حال باید این چادر را یک نفر به راحتی بتواند حمل کند حال چه نتی شاهزاده توانست چنین چادری را با این خصوصیات فراهم کند دوباره سلطان تقاضای دیگری در همین ردیف از شاهزاده بنمایید که بسیار دشوار و غیر عادی باشد در این صورت شاهزاده به کلی با شما ارتباط خود را قطع خواهد کرد و از شما رفع خطر خواهد شد در این حال نه شاهزاده را زندانی کرده اید و نه خون او را ریخته اید وقتی جادوگر سخنان خود را به پایان آورد، سلطان از مشاورین خود پرسید آیا شما پیشنهادی بهتر از این دارید؟ چون همه سکوت اختیار کردند سلطان نظریه جادوگر را نظر مناسبی تشخیص داد روز بعد وقتی شاهزاده به حضور سلطان آمد بعد از اندکی مذاکره در مطالب گوناگون سلطان گفت خوش وقتم که دوران بیخبری از تو به پایان رسیده و هر ماه تو را میبینم و خدا را شو که از زندگی زناشوی خود خوشنودی و با پریزادی ازدواج کرده ای که شایستگی عشق تو را دارد اینک دارای یه موقعی از وصلوتی هستی که مورد توجه و حسادت دیگران شده ای. اما من که پدر تو هستم لذت میبرم و خوشحالم چون پریان دارای نیروی موفق بشری هستند و من نیازی به یاری تو دارم تا تو با یاری همسرت به من کمک کنی تو میدانی که در هر سفری که با لشگریان خود می روم حمله چادرهای بیشمار چه حزینه ی ای را تشکیل می دهد مل دارم با کمک همسرت چادری آنچنان وسیع و بزرگ برای من فراهم کنی که یکی از افراد من به تنهایی قادر به حمل و نقل آن باشد و در زمین این چادر آنقدر بزرگ باشد که تمام لشگریان و ملازمان من را در خود جای دهد میدانم که انجام این تقاضا کار هر کس نیست ولی همسر تو حتما می‌تواند خصوصاً که بگویی برای من و به خاطر کمک به من است. شاهزاده احمد هرگز انتظار نداشت که سلطان چنین خواهشی از او بکند. گرچه انجام آن غیر ممکن نبود ولی بسیار دشوار خواهد بود و از این گذشته شاهزاده از حدود توانایی پریبانو، در انجام کارهای غیرعادی عادی و خارج از قدرت آدمی آگاهی نداشت و تا کنون هیچ کونه تقاضایی در این زمینه ها نکرده بود و روابط ای که انگیزه آن فقط محبت بود بین آنها حکومت میکرد ولی در هر حال از عشق صدقانه پریبانو هم نسبت به خود از اونی که گفتید من روی همسرم دارم نمیدانم چه بگویم همینقدر میدانم که بدون قید و شهر یکدیگر را دوست داریم؟ اما تقاضای یک پدر از فرزند، آن هم فرزندی چون من در حقیقت فرمانی است که برای او صادر می شود و احساس می کنم که وظیفه دارم آن را انجام دهم و شما سبب به انجام کاری از من می شوید که روحا از آن بیزارم و نمی خواهم از همسرم بکنم. ما این همه این تقوضا را از همسرم خواهم کرد. سلطان پاسخ داد پسرم مذرت میخواهم چیزی از تو میخواهم که حس میکنم سبب میشود دیگر تو را در اینجا نخواهم دید ولی با سخنانی که گفتی فهمیدم از قدرت و نفوذ شوهر بر روی همسر بی اطلاعی و اگر همسرت با قدرتی که به عنوان یک پریزاد نخواهد کاری به این سادگی را انجام دهد معلوم میشود علاقه چندانی به تو ندارد پس از او بخواه به خاطر من آن را انجام دهد فقط از او تقاضا کن و او انجام خواهد داد چه گروه بسیاری که به خاطر ترس از تقاضا کردن خود را از مزایا و نعمت‌های بسیار محروم ساختند فکر کن اگر همسرت از تو تقاضایی کرد تو انجام نمی‌دادی بنابراین او که تو را دوست دارد درخواست تو را میپذیرد. سخنان سلطان در زمینه مهر زن و شوهر نسبت به یکدیگر تغییری در تفکر شاهزاده نداد و او همچنان در ناراحتی باقی بود و دو روز هم جلوتر از وقت مقرر درباره سلطان را ترک گفت هنگامی که شاهزاده نزد پریبانو مراجعت کرد خوش خوشمرد استقال او قرار گرفت ولی وقتی همسرش پرسید چرا زودتر به خانه آمدی پاسخی نداد و چهره گرفته او موجب شد پریبانو علت آن را بپرسد شاهزاده باز هم پاسخی نداد و همچنان در فکر بود پریبانو گفت ناراحتی خود را بگو قول می‌دهم تو را از این ناراحتی خواهم رهاند مگر که خدایی ناکرده سلطان پدرت را از دست داده باشی شادزاد در برابر اصرار کنیزانو پاسخ داد خدا پدرم را عمر طولانی دهد او سالم است فقط از من تقاضایی کرده که مرا ناراحت ساخته است دیگران که من نمی‌دانم او از کجا فهمیده است که من با تو ازدواج کرده ام و یکدیگر را این همه دوست داریم در صورتی که طبق توافقی که با یکدیگر کردیم من در این باره یک کلمه سخن نگفتم و حتی دفعه گذشته که درباره محل زندگی و کار من پرسش هایی کرد به او گفتم که در اینباره از من چیزی نپرسید پریبانو سخن شاهزاده را قطع کرد و گفت اگر تو نمیدانی سلطان چگونه به این راز پی برده است من میدانم به یاد داری وقتی آن پیر زن ظاهرا بیمار را به خانه آوردی به تو گفتم این بانوی پیر بیمار نیست و در آینده موجب دردسرهایی برای تو خواهد شد این پیرزن را سلطان فرستاده بود تا از اسرار و محل زندگی تو آگاه شود و این پیرزن هرچه را که دیده و شنیده گزارش کامل داده اما بگو ببینم سلطان چه تقاضایای از تو کرده است من مشکلات تو را از میان برمیدارم شاهزاده گفت بانوی عزیزم من تو را به خاطر خودت دوست دارم و تا تاكنون هیچ خواهشی از تو نداشتم زیرا عشق تو برای من کافی است ما هر دو خوشبختیم و هر دو صمیمانه یکدیگر را دوست داریم بدون آنکه انتظاری از هم داشته باشیم اما پدرم از من تقاضا کرده تا تو برای او یک چادری فراهم آوری که بتواند تمام لشکریان و همراهان و چهار پایان باربر او را در مسافرت‌هایش در خود جای دهد و در عین حال یک نفر هم قادر باشد چنین خیمهای را به تنهایی در این سفرها با خود هم کند پریبانی پاسخ داد انجام کاری به این سادگی مشکل نیست که تو به خاطر آن خود این همه آزار دهی علت این که تو این همه ناراحت شدی این است که تو و من یکدیگر را به خاطر یک دیگر دوست داریم نه به هیچ جهت دیگر و تو به خود اجازه نمی چیزی از من بخواهی وگرنه انجام خواسته یه سلطان امری پیش پا افتاده است و من می توانم کارهای فوقلادهی انجام دهم تو مطمئن باش به خاطر تو هر خواهیشی از من بکنی انجام می‌دهم.